مثنوی معنوی مولوی برنامه 122 دوم در بیان وخامت چرب و شیرین دنیا و مانع شدن او از تعام الله وارهی زین روزی ریزه کسیف درفتی در لوت و در قوت شریف گر هزاران رتل لوتش می خوری می روی پاک و سبک همچون پری که نه حبس باد و جد کند چهار میخ معده آهن جد کند گر خوری کم گرسنه مانی ور خوری پر گیر دماغ کم خوری خوی بد و خشکی و دق پر خوری شد تخمه تن مستحق از تعام الله و قوت خوشگوار بر چنان دریا چو کشتی شو سوار باش در روزه شکیبا و مصر دم به دم قوت خدا را منتظر کان خدای خوب کار برد بار هدیه ها را میدهد در انتظار. انتظار نان ندارد مرد سیر که سبک آید وظیفه یا که دیر. بینوا هر دم همه گوید که کو در مجاعت منتظر در جستجو. چون نباشی منتظر ناید به تو آن نوالی دولت هفتاد. تو ای پدر الانتظار الانتظار از برای خان بالا مردوار هر گرسنه عاقبت قوتی بیافت آفتاب دولت بروی بتافت زیف با همت چزاش کم خورد صاحب خان آش بهتر آورد جز که صاحب خان درویش لعیم زن بد کمبر بر رزاق کریم سر براور همچو کوه ایسند تا نخستین نور خور بر تو زند کان کوه بلند مستقر هست خورشید صحر را منتظر جواب آن مغفل که گفته است که خوش بودی این جهان اگر مرگ نبودی و خوش بودی ملک دنیا اگر زبالش نبودی و الله حاضل و من الفشارات آن یکی می گفت خوش بودی جهان گر نبودی پای مرگ اندر میان آن گفت ار نبودی مرگ هیچ که نیرزیدی جهان پیچ پیچ خرمن بودی بدشت دشت افراشته محمل و ناکفته بگذاشته مرگ را تو زندگی پنداشتی، تخم را در شور خاک کاشتی. عقل کاذب هست خود معکوس بین، زندگی را مرگ بیند، ای غبین. ای خدا بنمای تو هر چیز را، آنچنان که هست در خود احسرا، هیچ مردن نیست پر حسرت ز مرگ حسرتش آن است کشکم بود برگ ورنه از چاه به صحرا افتاد در میان دولت و عیش و گشاد زین مقام ماتم و ننگین مناخ نقل افتادش به صحرای فراخ مقعد صدق نه ایوان دروغ باده خاص نمستی مستی زدوغ مقعد صدق جلیسش حق شده رست از این آب و گل آتش کده ور نکردی زندگانی منیر یک دودم مانده است مردانه میر فیما یرجا من رحمت الله تعالی موتی النعم قبل استحقاقها. در حدیث آمد که روز رست خیز امر آید هر یکی تن را که خیز نفخ سورم است از یزدان پاک که برارید ای زرایر سرز خاک باز آید جان هر یک در بدن همچو وقت صبح هو شاید بتن جان تن خود را شناسد وقت روز در خراب خود درا چون کنوز جسم خود بشناسد و در رود جان زرگر سوی درزی کی رود جان عالم سوی عالم میدود روح ظالم سوی ظالم میدود که شناسا کردشان علم اله چون که بر را میش، وقت گا پای کفش خود شناسد در ظلم چون نداند جان تن خود ای سنم ساب حشر کوچک است ای مستجیر حشر اکبر را قیاس از وی بگیر آنچنان که جان بپرد سویتین نامه پرد تا یسار و تا یمین در کفش بنهند نامه بخل و جود، فسق و آن آنچه دی خو کرده بود. چون شود بیدار از خواب او سحر باز آید سوی او آن خیر و شر. گر ریاضت داده باشد خوی خیش، وقت بیداری همان آید پیش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 مرگ اصغر مرگ اکبر را زدود لیک این نامه خیال است و نهان وان شود در حشر اکبر بس ایان این خیال اینجا نهان پیدا اثر زین خیال آنجا برویاند سوار در مهندس بین خیال خانه در دلش چون در زمین دانه آن خیال از اندرون آید برون، چون زمین که زاید از تخم درون. هر خیال کوکند در دل وطن روز محشر صورت خواهد شدن. چون خیال آن مهندس در زمیر، چون نباتند در زمین دانگیر. مخلصم زین هر دو محشر قصه است، مؤمنان را در بیانش حصه است. چون براید آفتاب رست خیز، بر جهان از خاک زشت و خوب تیز، سوی دیوان قضا پایان شوند، نقد نیکو و بد بکوره می روند، نقد نیکو و شادمان و نازناز، ناز. نقد قلب اندر ظهیر و در گداز لحظه لحظه امتحان ها میرسد سر دلها می نماید در جسد چون قندیل آب و روغن گشته فاش یا چو خاکی که بروید سرهاش از پیاز و گندنا و کوکنار سر دی پیدا کند دست بهار آن یکی سرسبز نحن المتقون واندگر همچون به نفشه سرنگون چشمها بیرون جهیده از خطر گشته ده چشمه بیم مستقر باز مانده دیدهها در انتظار تا که نامه ناید از سوی یسار چشم گردان سوی راست و سوی چپ زن که نبود بخت نامه راست زب نامه آید به دست بنده سرسیه از جرم و فسقاگنده اندرو یک خیر و یک توفیق نه، جز که آزار دل صدیق نه. پر ز سر تا پای زشتی و گناه، تسخر و خونبک زدن بر اهل راه، آن دغلکاری و دزدیهای او، وانچ فرعونان انا و نای او. چون بخاند نامه خود آن سقیل، داند و که سوی زندان شد رهیل پس روان گردد چو دزدان سوی دار جرم پیدا بسته راه اعتظار آن هزاران حجت و گفتار بد بر دهانش گشته چون مسمار بد رخت دزدی بر تن و در خانش گشته پیدا گم شده افسانهش، پس روان گردد به زندان سعیر که نباشد خار را ذاتش گذیر. چون معکل آن ملایق پیش و پس بوده پنهان گشته پیدا چون از هست. می برندش می سپوزندش به که برو ای سگ به های خیش می کشد پا بر سر هر راه او تا بود که بر جهد زانچاه او منتظر می ایستد تن میزند در امید روی واپس می کند عشق می بارد چو باران خزان خشک امید چه دارد او آن هر زمان روی واپس می کند رو به درگاه مقدس می کند پس زهق امراید از اقلیم نور که بگویدش که ای بددال اور انتظار چیستی؟ ای کان شر رو چه واپس می کنی؟ ای خیر سر نامت آن است؟ آمد بدست. ای خدا آزار و ای شیطان پرست چون بدیدی نامه کردار خیش چنگری پس بین جزای کار خیش به هده چه مول مولی میزنی در چنین چه کو امید روشنی نه تو را از روی ظاهر تاعته نه تو را در سر و باطن نیتی، نه تو را ها مناجات و قیام، نه تو را در روز پرهیز و سیام، نه تو را حفظ زبان زازار کس، نه نظر کردن به عبرت پیش و پس، پیش چه بود؟ یاد مرگ و نزع پس چه باشد؟ مردن یاران ز پیش نه ترا بر ظلم توبه پرخروش ای دغا گندم نمای جو فروش چون ترازوی تو کش بود و دغا راست چون جویی ترازوی جزا چون که پای چپ بودی در قدر و کاست نامه چون آید ترا در دست راست چون جزا سایه است ای قد تو خم، سایه تو کشفتت در پیش هم. زین قبل آید خطابات درشت که شود که را از آن هم گوش پشت. بنده گوید آنچه فرمودی بیان صد چنانم، صد چنانم، صد چنان خود تو پوشیدی، بترها را به حیلم ورنه میدانی دانی ها به علم. لیک بیرون از جهاد و فعل خیش از ورای خیر و شر و کفر و کش و از نیاز آجزانی خیشتن و از خیال و وهم من یا صد چمن بودم امیدی به محض لطف تو از برای راست باشی یا اوتو بخشش محضی ز به بیعوز بودم امید ای کریم بیغرز رو سپس کردم بدان محض کرم سوی فعل خیشتن می ننگرم سوی آن امید کردم روی خیش که وجودم داده ای از پیش پیش خلعت هستی بدادی رایگان من همیشه معتمد بودم بران چون شما جرم خود را و خطا محض بخشایش درآید در عطا که ملائک باز آوریدش به ما که بدستش چشم دل سوی رجا لا وار آزادش کنیم وان خطاها رو همه خط برزنیم. لا مرکس را شد مباه کش زیان نبود زغد رو از سلاح. آتش خوش برفروزیم از کرم تا نماند جرم و ذلت بیش و آتش که از شعلش کم تر شرار می بسوزد جرم و جبر و اختیار شعله در بنگاه انسانی زنیم خار را گلزار روحانی کنیم ما فرستادیم از چرخ نهم کیمیا یصلح لکم اعمالکم خود چه باشد؟ پیش نور مستقر کر فر اختیار بلبشر گوشت پاره آلت گویای او په پاره منظر بینای او مسمع او آن دو پاره استخوان مدرکش دو قطره خون یعنی جنان. کرمکی و از قذر اگندهی تو در جهان افغنده ای از منی بودی منی را واگذار ای ایاز آن پوستین را یاد دار قصۀ عیاز و حجره داشتن او جهت چارق و پوستین و گمان آمدن خاجه آشانش را که او را در آن حجره دفینه است به سبب محکمی در و گرانی قافل. ان ایاز از زیرکی انگیخته، پوستین و چارقش آویخته می رود هر روز در حجره خلا، چارقت این است منگر در اولا شاه را گفتند او را حجره است، آنجا زر و سیم و خمره است راه می ندهد کسی را اندرو بسته می دارد همیشه و. شاه فرمود ای عجب آن بنده را چیست خود پنهان و پوشیده از ما پس اشارت کرد میره را که راو نیمه شب بکشای و حجره شو هرچی یابی مرتو را یغماش کن، سر او را بر ندیمان فاش کن. با چونین اکرام و لطف به عدد، از لعیمی سیم زر پنهان کند. می نماید او وفا و عشق و جوش، وانگه او گندم نمای جوفروش. و هر که اندر عشق یا بد زندگی کفر باشد پیش او جزبندگی نیم شب آن باسی معتمد در گشاد حجره او رعی زد مشعله بر کرده چندین پهلبان، جانب حجره روانه شادمان، کمر سلطان است بر حجره زنیم، هر یکی همیان زر درکش کنیم. آن یکی می گفت، هی چه جای زر، از اقیق و لالگوی از گهر خاص خاص مخزن سلطان وی است بلکه اکنون شاه را خود جان وی است چه محل دارد به پیش این عشیق لال و یاقوت و زمرد یا عقیق شاه را بر نبودی بدگمان تسخری می کرد بحر امتحان پاک می دانستش از هر غش و غل باز از وهمش همی لرزید دل که مبادا کین بود خسته شود من نخواهم که برو خجلت رود این نکردست او و گر کرد او رواست، هرچه خواهد گو بکن، محبوب ماست. هرچه محبوبم کند من کردم. او منم، من او، چه در پردم؟ باز گفتی دور از آن خوب و خسال. این چنین تخلید جاج است و خیال. از آیاز این خود محال است و بعید. کو یکی دریاست قعرش ناپدید. هفت دریا اندرو یک قطره. جمله هستی زموجش چکره. جمله پاکیها از آن دریا برند، قطره یک با یک میناگرند. شاه شاهان است، بلکه شاه ساز، وز برای چشم بد نامش عیاز. چشمهای نیک هم بروی بد است، از ره غیرت که حسنش بیهد است یک دهان خواهم به پهنای فلک تا بگویم وصف آن رشک ملک وردهان یابم چونین و صد چونین تنگ آید در فقان این هنین اینقدر قدر همگر نگویم ایسند. شیشه دل از ضعیفی بشکند. شیشه دل را چونازک دیدم. بحر تسکین بس قبا بدریدم. من سر هر ماه سه روز ایسنم. بیگمان گمان باید. که دیوانه شدم هین که امروز اول سه روز است روز پیروز است نه پیروز است هر دل غم شه می بود دم بدم او را سر مه می بود قصه محمود و اوصاف ایاز، چون شدم دیوانه، رفت اکنون زساز. برنامه های مصنوی معنوی مولوی را می نوکتاش و شهباز ایرج تهیه و اجرا کردند.